به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده فاتیما افشار این داستان محاکمه سنگ یک محاکمه به معنی دادرسی و دریافتن اتهام وارده به شخص مجرم هست و در اونجا باید گناهکار یا بیگناه بودن اون فرد مشخص بشه قاضی بعد از شنیدن حرفهای متهم و شاهدان اگه فرد متهم باشه رأی به مجازات اون میده و در غیر این صورت اون رو تبرئه و آزاد میکنه پسر بچه قصه ما آنیو یه پسر کوچیک و باهوش بود که همراه مادر بزرگش توی دهکده کانتون توی یکی از شهرهای کشور بزرگ چین زندگی می آنیو توی زمان بچگیش مادرش رو از دست داده بود و به خاطر همین مجبور بود با مادر فقیرش زندگی کنه مادر بزرگ هم برای تأمین مخارج با پختن نون و شیرینی و کلوچه و فروختن اونها زندگی خودش و نوش رو می گذروند مادر بزرگ هر روز شیرینی‌های پخته شده رو توی سبدی روی هم قرار می‌داد و به آنیو میسپرد تا اونها رو بفروشه. آنیو هم توی کوچه پس کوچه های شهر پرسه می‌زد و کلوچه می‌فروخت. یه روز مادر بزرگ 300 تا کلوچه پخت و اونها رو به آنیو داد. آنیو هم همه کلوچه‌ها رو روی هم توی سبدی گذاشت و برای فروش به شهر رفت. وقتی که به شهر رسید، مشغول کار شد و کوچو خیابونها رو یکی بعد از دیگری رد می‌کرد و کلچ‌های مادر بزرگش رو می‌فروخت. در مدت کمی همه کلچ‌ها رو فروخت و پولی را که از فروش کلچ‌ها به دست آورده بود، زیر کاغذ روغنی ته سبدش قایم کرد. همین که می‌خواست به خونه برگرده، متوجه شد پیرزنی روی زمین افتاده و میوه‌های توی سبدش روی زمین پخش شده آنیو سبد خودش رو کناری گذاشت و به کمک پیرزن رفت میواهی پیرزن رو توی سبدش جمع کرد و به دست پیرزن داد اما وقتی برگشت تا سبد شیرینی خودش رو برداره با تعجب دید که سبدش نیست دوروبرش رو نگاه کرد و سبدش رو کنار یه سنگ بزرگ دید به سرعت سمت اون دوید اما وقتی کاغذ تهی سبدش رو برداشت پولهاش رو ندید. گریه فریاد میزد. تمام پولامو رو حالا چه کار کنم؟ مردم دور اون جمع شده بودن و ازش میپرسیدن که چرا گریه وزاری می آنیا هم جواب داد. پیرزنی توی خیابون به زمین افتاده بود و میباهاش روی زمین پخش شده بودند. من به اون کمک کردم حالا که برگشتم سبد خودم خودمو بردارم میبینم که پولامو دزدیدن حالا چه کار کنم چطوری جواب مادر بزرگم و بدم ما با فروش این کلوچه ها زندگی خودمون رو اداره میکنیم. دیگه حتی پولی برای خرید آرد و شکر و روغن هم نداریم چجوری دوباره کلوچه بپزیم من و مادربزرگم فقیریم حالا همه پولای ما رو دزدیدن ما از گرسنگی میمیریم. پاکونگ قاضی شهر مرد مهربانی بود و قاضی عادلی بود که به مردم شهرش کمک میکرد. وقتی آنیو پاکونگ رو دید به سمتش دوید و گفت ای قاضی عادل و مهربان به داد من برس و کمکم کن. بعد حادثهی که براش اتفاق افتاده بود رو تعریف کرد و به قاضی گفت من و مادربزرگم بزرگم فقیر هستیم. ما در بزرگم با زحمت زیاد این کیک ها رو میپزه و به من میده تا بفروشمش. بعد از فروش این کیک ها و پول اونا ما لوازم و وسایل اولیه کار رو برای پخت کلوچه ها میخریم. اما حالا همه پولای منو دزدیدن لطفا لطفاً به من کمک کن. پاکونگ به مردمی که دور آنیا جمع شده بودن نگاهی کرد و رو به مرد جوونی گفت آیا تو پول این پسر بچه رو برداشتی؟ او مرد جواب داد نه من این کار را نکردم بعد رو به مرد چاق و تنومندی کرد و ازش پرسید آیا تو پول های این پسر بچه را برداشتی؟ اون مرد هم جواب داد نه من این کار را نکردم بعد رو به مرد دماغ گندهی کرد و پرسید آیا تو پول های این پسر بچه را برداشتی؟ اون مرد هم جواب داد نه من این کار را نکردم پاکان که قاضی عادلی بود از همه مردمی که اونجا بودند این سال را پرسید اما وقتی دید که همه به اون جواب منفی میدن بهش گفت خب به این ترتیب هیچ کدوم از شماها که اینجا هستین پول آنیو رو بر نداشتین کس دیگه یه هم که اینجا نیست فقط این سنگ بزرگ اینجا هست حتما اون این پول رو برداشته من این سنگ رو محاکمه میکنم. تا حقیقت ماجرا روشن بشه پاکانگ رو به همراه های خودش کرد و گفت این سنگ رو به دادگاه بیارید تا اونو محاکمه کنم تا مشخص بشه که پولهای آنیا رو این سنگ برداشته یا کس دیگه ای برداشته آدمهایی که دور قاضی و آنیو بودن با تعجب به حکم پاکانگ نگاه میکردن و با خودشون میگفتند این مسئله خیلی مهمه ما باید به دادگاه بریم و شاهد محاکمه سنگ باشیم تا ببینیم قاضی پاکانگ چجوری پولها رو پیدا میکنه. ما باید بفهمیم که سنگ چجوری به سوالهای قاضی جواب میده و چطوری از خودش دفاع میکنه. کنه پاکان که شاهد تعجب حضار بود به اونها گفت شما هم میتونید توی دادگاه حضور داشته باشید به خطر همین همراه قاضی سنگ رو برداشتن و به اتفاق اونو به سمت دادگاه رفتن. پاکونگ به یکی از کارگزاران دادگاهش گفت ظرف آبی رو نزدیک در ورودی بذارین تا افرادی که وارد دادگاه میشن 20 سنت برای ورودی دادگاه توی ظرف آب بندازن. پاکونگ خودش کنار در ورودی بایستاد و افرادی رو که وارد دادگاه میشدن و 20 سنت خودشون داخل ظرف آب مینداختن نگاه کرد. جوان و مرد چاغی همراه یه پیرمرد قبل از ورود به دادگاه هر کدوم یه 20 سنتی رو داخل ظرف آب انداختن بقیه هم که دنبال اونها بودن همین کارو کردن تقریبا ظرف آب پر از سکه های 20 سنتی شده بود آخرین نفر مرد دماغ دماق‌گنده‌ای بود که قبل از ورود سکه 20 سنتی خودش رو داخل ظرف آب انداخت قاضی رو به همه حاضرین توی دادگاه گفت شاهد باشید و ببینید که دزد پول‌های آنیو همین آدمه. کارگزاران دادگاه خودش رو صدا کرد و گفت اونو دستگیر کنید و کیسه و جیبهاش رو خالی کنید حتما پولای که سرقت شده رو پیدا می کنید. به دستور قاضی کارگزاران دادگاه مشغول گشتن جیب و کیسه مرد دماغ گنده شدند همین که کیسه مرد رو باز کردند مبلغ 280 سنت پول رو در اون, اون پیدا کردم آنیو با دیدن پول که از کیسه مرد دماغ گنده بیرون آورده شده بود فریاد زد و گفت آه خدای من پول من پیدا شد این همون پول هایی از طریق فروش کلوچه به دست آوردم ولی مجموع اونها 300 سنت بود پاکان گفت تو درست میگی پسر جون گفته های تو برای من ثابت شده است و این پولام برای تو هست و این مرد دزد پولای توه مرد دماغ گنده رو به قاضی گفت شما چطوری این راز رو پی بردین؟ چطوری تشخیص دادین که این پولا متعلق به من نیست و برای آنیو هست؟ قاضی به حاضرین که همین سار روی لبشون بود نگاهی کرد و گفت برای اینکه بفهمین من این کار رو چطوری انجام دادم بیاید جلو و به ظرف آب نگاه کنید. آنیو سکه زیر کاغذ روغنی توی سبد گذاشته بود. من کاغذ رو دیدم. اون کاغذ روغنی بود و پس باید سکه هایی که زیر کاغذ بود کمی روغنی شده باشن. دقت کنید. روغنی سطح آب رو فرا گرفته. دقیقا من به خاطر همین نزدیک ظرف آب وایساده بودم تا ببینم چه کسی سکه روغنی رو داخل ظرف آب میندازه. وقتی این مرد دماغ گنده وارد شد و سکهش رو توی آب انداخت، بلافاصله روغن روی سطح آب اومد و من فهمیدم که دزد پولهای آنیو همین مرد هست. به خاطر همین به کارگزاران دادگاه هم دستور دادم که اون رو بازرسی بدنی کنن. با حرفهای قاضی مرد دماغ گنده ناچار به اقرار شد و از کار زشتی که کرده بود شرمنده و خجالت زده شد. قاضی پولها رو به آنیو برگردوند و دوز رو به مجازات عمل خودش رسوند. آنیو با خوشحالی به سمت خونش برگشت و از اینکه با پیدا شدن پولاش میتونه زندگی خودش و در بزرگش و سر و بده شاد و خوشحال بود.